بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين أما بعد بحث ازدواج و كتاب اهل كتاب أغير كافران فس كرا غزاش حلاله وكرا ازدواج بوانه خدا حلال کرده الآن حلال دونستان وإجازه خدا داد یا نه حشريع السرف ماسي السرف خدا السرف خدا خب خداوندا ما نمیتونیم برای خدا تعیین تکلیف بکنیم خدا هست که حکم میکنه لا یسال عما یسأل و هم یسألون لا یسأل عما یفعل خدا سوال نمیشه درباره فعلی که اجازه میده مثلا تشویق میکنه حلال میکنه یا حرام میکنه لا یسأل و هم یسألون ما این میشیم خدا حلال میتونه خدا حرام میکنه قضیه طالوت فلما فصلت طالوت بالجنود قال ان الله مبتلیکم بنهر اب حرام اب رسیدن قال ان الله مقتليكم منها خدا هم امتحان میخواست میخواست بکنه در چی آب رو خونه اون آب گویا در حالی که تشنه بودن خسته بودن آدم آب به سر صورت خودش بزنه و بوغوره بنوشه ولی که خدا اونجا براش حرام کرد الا من اقترفه غرفه ای امتحان بود ابتلا بود خدابنده که تشویق میکنه و ما نمیتونیم برای خدابند روی حکمش ازار نظر, نظر تشریح خدابنده خدابند اجازه ده اجازه خدابند در ازدواج با اونها استثناء هست خداوند استثناء قرار داده غزاشون و ازدواج با اونها هم طور هم در قضیه جزیه اهل کتاب رو خدابند استثناء قرار داده قال السابع السحر و منه الصرف و العطف فمن فعله او رضی بهی کفر سحر شعب دوازی سحر جادوگری سحر جادو جنبال اینا همه چیه؟ معاد جادو جنبل و جادوگری و اینا همه معادلت از انواع اون سحر صرف بعف صرف یفرقون بین المرء و زوجه صرف دو تا شخص را از همدیگه منفترق میکنن طلاق مید بدن بین دو تا شخص جدایی مید بدن این از موه میرن پیش ملا تا پیش تا اون دو شخص همدیگه جدا بکنن این یه کفر و سرق و سحر دیگه عطف دو تا شخص به همدیگر برسونن دو تا شخصی که همدیگر رو دوست ندارن زنی مثلا به فرض مردی رو دوست داره میخواد با اون ازدواش کن مرد اون رو نمیخواد میره مثلا جن تضعیم میکنه اون زن را جلوه بچشش تا اینکه که اون را دوست داشته باشه این بهش میگن چیست حراط اون دو نفری که, که همدیگر رو نمیخواد به همدیگر فمن فعله او رضی بی کفر کسی که انجامش بده بره پیش جا دوگ من اتى كاهنا او عرافا فقط كفر بما انزل محمد صلى الله عليه وسلم كاتبره في شيء جادوگر که اين کاری براش انجام بده با این فعلش کافر شده كفره حالا بحثه گفتم شروط و انتفال ممانه مسئله ديار. او راضي به كفر يو راضي شد يعني بگه این چیز خوبيه حالا خصوصا اين مسئله ك... اي كه كه اشتباهي توش مش نياز بحثي بعض بحثه نوشره رو میکن بحث حل تحواسه حالا ممثل بالفرس دوتا زن و مردی میخوانام دیگه جداابشم با صح. بعض گفتن اینجا رفتن پیش جادوگر جواز هست که این صح راواسهح حل بشه خیر جواز است. رس الله صلهعل ووسسلام مطقا رفتن به پیشش جادوگر حرام ه. جادو با جادو حل نمیشه بلکه جادو فقط باخور آنحل میشه. این مسئله حالا هر چنکی جاش کتاب توحید محمد وهاب نه اینجا دلیل بر کفر سر صح فالمدی خداون میگه دلیل قول و تعالی و ما یعلمانی من احد حتى یقول انما نحن فتنه فلا تکفر هاروت ماروت کسی یاد نمیدادن مگر اینکه بهش میگن می فعلی که ما داریم بهت یاد میدیم کفر میخوای کافر بشو خاطر همین وقتی که یه کسی حاجتی اول قربانی بیار مرغ اول بل زبح بغیر خدا میکنه و اون شخص هم اقرار میکنه چه دیگر و با اقرارش و با این فعلش که بذرو میاره نزدش دو شرک اکبر میشه و بعد جن تابع میشه و میاد حاجتشون انجام میده به خاطر همین هاروت و ماروت میگفتن به واشخ اعلام میکردن که این فعل جادو کفر و خداوند از باب تعیید این قضیه را نقد میکنه صح اینا یک نوعی یعنی بحث جادو جنبل اون کارهایی که صوفیا در زمان ابن تیمیه رحم الله می کردن در آتش می‌رفتن و نمی‌دونم چخوتو بدنشونو می زدن و نمی‌دونم روی آب راه می‌رفتن اینها انواع داره خدا جادو مثلا خداوند یک نوع در زمان فرعون یاد می‌کنه و یخیل الیهم من سحرهم انها تسعه تخیل سحر تخیل دارن یک انوعی که الان داشتیم مثلا یکی از ال صحت صرف انواع مختلفی داره و یاد گرفتن علمش انجامش رفتن پیش شخص جادوگر همه اینا شده نگاه کردن به این اشخاص گناه حرامه خصوصا یک مسائلی که ما پیش میوفتیم که محل اختلاف بین علما در کفر اکبر بودن چه اصغر بودنش از خوندن این ابراجی که مثلا فلانی تو فروردین به دنیا اومده نمیدونم اینطوریه خصلتش اینطوریه با این بهمن ماهی ازدواج بکنه خوشبخت میشه و در فلانو ثرانه اتفاق بهش میییه این پولدار میشه اینها خوندنش هم بعضی ها گفتن کفر اکبره چون اقرار بر کاهن چون رسول الله میگه من اتکاهینا او عراف اون کاهن اون عرافی که از غیب داره خبر میده بس خروجیرتان خداست کی از غیب جز خدا اقرارمون بر اون مسئله که تکهون شده روش در اون قضیه ابراج کفر اکبر بعضیا گفتن و بعضی دیگه گفتن خیر کفر اکبر نیست بلکه کفر از ذره مثلا که اینجا حله تأسیل در این مسئله نیست قال التاص من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين والدليل قول تعالى وما يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين شخ صالح على شخ وزيرة وقافة عرب إسلامية كتابه لدد أربحث موالات وتولي كتابه افتماع الزباب كتابه بحثه يخلقه بها تربحثه تميذ بين موالات وتولي موالات دوست داشتن تولی نهایت دوست داشتن یک مبالغه در اون ولا هست در اون محبت در اون رضایت یک مبالغه دوش هست ما باید لغت قرآن بفهمیم این خداون وقتی که اینجا این کلمه رو استفاده می چرا این استفاده می چرا یه جایی میگه؟ لا يا ايها الذين لا تتاخذ اليهود والنصارى اولياء ترى مجقف اوليا بحث مجرد بل لا چرا جي دي رو پمه اتولهم منكم فانه منهم چرا اتولي رو چه فرق بین این دو تا هست ما باید این نصوص را بر نصوص سنت تطبیق بدیم تا این که تحریر محل نزاع مجرد زلا کفر نیست مجرد حمایمون شدن مجرد نصرت خواستن کمک گرفتن مدارا کردن با کفار کفر اکبر نیست، شرک اکبر نیست. چرا؟ ادله زیاد. چرا؟ ادله زیاد. مثلا فرموده خداوند و ائمه تخفنا من قوم خيانه فم بالالين على تا. درست؟ کوجاس بحثش طلع عدیبیه. اگر ترسیبی که اونها پیمانتو بشکنن تو پیشوا واسه. فهمیدی؟ اونها من خیانت بکنن این آیه دلالت بر میده؟ دلالت بر جواز معاهدت پیمان بستن با کفار نه رسول ها این کار رو کرد نکرد آیا پیمان بستن رسول الله صلی اللہ علیه وسلم سلح رسول با مشرکین و اون قراردادی که بس مجرد قرارداد و عهدامش کفر اکبر بود خیر که خودش کفره اعتقاد به این که این عهد پیمان کفری بوده کفر خودشون نقض حکم رسول ها و حکم خداونده معامله و مدارا با کفاره منیت قضیه صومعه که معروفه صومعه رجالله اعظم وقتی که رفت اسلامش رو یعنی امثال قالوا قد سبح قال قال بر اسلام تو صابئی شدی که نه من قال والله لا اتيكم الحج قسم خورد که قسم می‌خورم که دیگه نمی‌ذارم جو و گندم بیاد به طرف شما اومد تحریم اقتصادی کرد اومد آن ابو سفیان و رسول الله صلی الله علیه و سلم کف که تو که دستوره رحم می چطوره که این اصحاب که مسلمان شدن دارن ما را تحریم میکنن نمیذارن که ما غذا و آذوقه به پیش ما بیاد بعد رسول الله صلی الله علیه و سلام نامه مینیویسه به سمامه تا یخلي بینه و بین الحمل که راه کنه بذاره حمل آذوقه بهشون برسه آیا اینجا رسول الله صلی الله علیه و در عدم تحریم اقتصادی به کفار قریش دلالت بر این میده که اینجا رسول الله صلی الله علیه با اونها هم بوده موالات اونها داشته اونها را دوست داشته چون گذاشت که آذوقه بون‌ها برسه تاامله نمیس نکنه رسول خدا صحیح اقتصادی شو شعب ابی طالب ولی اینجا رسول تاامله نمیس نکنه و کنه بذاری ما انکار فعلی ما نیست چون بعضی ها مجرد معامله گواکولا خوردی این پولت میره به یهود یهود مسلمانات و فلسطین میکشن در تو موالی توافقی تو کافرین نمیدونم پایگاه نظامی آمریکا تو عربستانه آمریکا نمیدونم فلان کشور از آمریکا اسلحه میخره این تعاونیشون ده بعد کفرتون خیر مجرد تعامل معامله زباید بر کف نمیده ما باید بریم به قصه حاطب این برکره حاطب رضی الله عنه نامه می نمیسه به کفار قرش که رسول الله حمله به شما داره اینجا توی فعل حاطب مبالاتی و تولی امام شفیه رحمه الله میگه احتمال هست تولیه احتمال هست فعل قبیحی خوصا تولی توش باشه قرینه که نامه می از صوته میکنه بر علیه مسلمان هم و احتمال داره هم تولی نباشه موالات باشه به خاطر دنیا این کارو کرده باشه خانواده خانواده‌اش نجات بده و بهانه قبیح‌تر از این بهانه قبیح و اقبح داریم احتمال داره کاسه اونها رو نصرت بده بر علی اسلام بغض اسلام و مسلمان ها و احتمال داره شکنه به خاطر دنیا این کارو کرده باشه به خاطر بهانه‌های دیگر میگه ولی رسول الله صلی الله علیه و به بهانه ها به قراء نگاه نکرد کرینه علش کسی که الان رسول خدا صلی اللہ علیه وسلم میخواد حمله بر بشه مشرکین تجسوس جاسوسی میکنه بر علیه مسلمان ها نامه میده مثل این مشرکین محمد میخواد بر شما حمله بکنه توتعه میکنه احتمال داره پیان بر شما کشته بشه اسلام نابود بشه قلیه دلالت میده که این شخص بغض اسلام رو داره بغض مسلمان ها رو داره داره مشرکین نصرت میده توش ظاهر و احتمال داره هم توش نباشه بہت رحم میگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاطب را خواست گفت حاطب چرا این کارو انجام دادی؟ قال يا رسول الله ما فعلته رده عن الاسلام و قال ما فعلته يا رسول غضب بالكفر من بکفر ونس ما بکفر وخیانت به اینکه کفار پیروز بشن به این راضی نیستم من مرتد نشدم یا رسول بود اونجا بودم بین قریش بودم ولی من از قریش نبودم شما همه اهل خانواده داشتید من خواستم دستی اونجا داشته باشم همکاری بانوها داشته باشم تا اینکه که خانوادم نجات بدم چون کس کسی این کاری خانوادم ندارن مالم خان و خانوادم خواستم نجات بدم بعد رسول الله بیگه عذرش و فزیره آیا احتمال هست؟ اینجا خاکم اینه دوچار کفر اکبر شده باشه بعد عمر رضی الله عنه میگه یا رسول دعنی ابرو بعونو قبیه گذنه تگذنه شو بزنم بر رسول مگه لئه قال وما ادراك يا عمر لعن الله اطلع على قلوب اهل بدن فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم آیا احتمال داشت اینجا دوتاره کفر اکبر شده باشه بعد خداوند هم ببخشه اي اهل بدر هر کاری خاصی انجام میدی شما رو بخشیدم اینجا حاطب دارید بخشایش قرار بگیره خیر اینجا فعل خاطر ذکر اندلات مرتبلين ندت حالت ظاهر اینطوریه ولی الله فقط غفرت لكم خدا من گفت از خدا من نقل میکنه اعمل و یا اهل بد دلالت بر اینجا اینجا بر این داد که فعل حاطب کفر اکبر نبوده بلکه کفر از غربوده بخاطر همین ایمه مثل مام رحمه الله اجماع نقل میکنه بر عدم ردت جاسوس اجماع نقل میکنه ایمه تحاوی و این مذهب ایمه چارگانه هست ایمه اهل سنت بر این که جاسوس کافر نیست الا اینکه اون جاسوس حب به نصفت کفر بر علیه اسلام داشته باشه یعنی بغض اسلام داشته باشه با زبانش اقرار بکنه بغض به اسلام نه این که مثلا بالفرد بعضیان میگرم میگن پایگاه نظامی عربستان یا ملک عبدالله ملک فهد که نمیدونم ما که بقال من ننونوی نه, نه آبیمون از اونجاست مثلا میگن فلان پادشاه عربستان سلیب پوشید پوشیدن صلیبش دلالت بر اینه که رضایت بر کف داره یا نمیدونم در فلانجا مشروب نوشید ناخده این, این هم اکس مشروبش نوشیدن مشروبش دلات بر استحلال این حرام رو داره خیر ما نمیتونیم با مجرد مشروب نوشیدن سلیف بوشیدن یا معامله و تعامل یا کمک خواستن از کفار مشرکی چی بگیریم؟ قرینه بر کفر اکبر قرینه بر استحلال محرم تا اینکه که چی بیاد؟ امر اعتقادی استحلال، جهود، استکبار و ما الى آخره از انواع کفر اکبر اینکه از مسائله نه اینکه ما بگیم حکام را تختیع نمی کنیم بحث تختیعی یک مسئله است بحث حکم کف یک مسئله دیگه است حکم کف دادن همینطوری نیست که ما بخوام بیایم حکم کف بدیم بعد دلیل میارن اون قصه شخصی که با همسر پدرش اطلباش کرد میگن قرینه اینجا رسول الله صلی اللہ علیه وسلم با توجه به دقیق ا الان خداوند در قرآن حرام کرده ازدواج با همسر پدر درست که بنوان ارث ببره و شخص ازدواج بکنه با اج همسر درست الان این شخص اومد ازدواج کرد با همسر پدرش بانوانه ارث با قانون جاهلیت فحکم الجاهلیت ابغوت و ما به حکم جاهلیت برخلاف حکم خدا و تحل میگه فرج اوی استحلال کرد بدرث وصلت سنه حکم کوشنه شو بده اینجا به خاطر اینکه زنا کرد به عنوان مرتد گفت گردنش بزنید یا به عنوان مستحل مرتد به عنوان اینکه حرام انجام داد زنا کرد گفت گردنش بزنید یا به عنوان اینکه استحلال حرام و حکم مرتد رو داشت به استحلالش نه به خاطر زناش اینجا مرتکب حرام شد و اون حرامش با توجه به استحلال اون حرام بود به خاطر همین رساسه گفت که اون رو به عنوان ردت شخص مرتد گردنشو بزن نه اینکه سنگدار بشه اینو باید ما و التحليل محللات و با را درست دروس بفهمیم به جای خودشه نه اینکه به مجرد اینکه یک موقعیت خاصی نقش بود بگیم بله اینجا رسول الله با توجه به خرید امکات خیر این شخص حکم خدا رو میدونست حکم قران بود خدا حک کرده بود این نمیدید بود که زنا بکنه این اومد ازدواج کرد این اومد ازدواج کرد به خاطر همینی که این فعل استحلاله عارفين استحلال لو بحثش که با قول با فعل این مسائل جای خودش داره نمیشه به مجرد قرینه ما حکم بخونیم یک نصوص براخره برای خودش رو یک دلالت ها داره که در جای خودش فهمیده میشه پس بحث مظاهرت مشرکیر و معاونتشون اینجا کلبه مظاهرت و معاونت رو مظاهرت معاونت مظاهرت نصرت دادن اونها یه چیزی فراسرت مجرد همکاریه نوا کنین بحث معاونت با مظاهره من یک سوالی میپرسم از جمع من همسایه‌ام مسلمونه همسایه دیگه رم یهوده همسایه مسلمونم اومد من رو بکشه همسایه مسلمونم اومد مرو بکشه اومدم کمک گرفتم از یهودی گفتم بیا به دادم برس با تعاون و مظاهرت اون یهودی حالا با تعاون و همکاری و نصرت اون شخص یهودی اومدیم اون مسلمون رو کشتیم آیا این تعاون این همکاری مجرد فعل در کشتن یک مسلمان آیا کفر اکبر مخرج از ملّت خیر من قتل دون ماله و عرضه او شهید این دیگه بحث کمک خواستن این دیگه بحث مصالح دنیا و این بحث نجات و نفس و اینا دیگه ما خودمون بهتر میدونیم اینا از امور دنیوی ماست بله اون که بحث پیروز کردن کفر بر علیه اسلام و استحلال و بغض اسلام اونجا مسئله دیگه فرمی کنه اونجا مظاهرت منظور این صاحب کتابه نه مجرد تعامل و معامله و نصرت خواستن و کمک گرفتن از کفار خاطر همین در سال نوت وقتی که جنگ کویچ و عربستان با عراق شد با صدام شد ابنباز به پادشاه عربستان ملک فرد اجازه داد که کمک از امریکا بگیره در دفاع از خودشون در مقابل تدام اونجا سفر حوالی و سلمان عوده اومدن حکم کفر عربسار رو دادن چون گفتن اینجا ناقض اسلام رو انجام دادن مظاهرت کردن کفر را بر علیه اسلام بر علیه مسلمان عراق با هم هم فیمان شدن که مسلمانان عراق را بکشن ابن باز نامه می نویسه نامه هاش هست بخونید کتاب مدارک و نظار در سیاست النظار تاریخ عبدالملک رمضانی که شیخ عبد عباد و شیخ البانی رحمهم الله تقریز و تایید میکنن این کتاب حتی شیخ مشیخ عبد عباد گفت که گفتم تو درسی که بودیم گفتن که این کتاب نخوندی و تاییدش کن گفت که لا بل قرات بنفسي من خودم خندم این کتاب تو این کتاب این نامه هست نامه ابن باث بن, بن عثیمین که تقاضا میکنن از پادشاه عربستان که این دو نفر زندان بشن به به خاطره که این را بر کفر حاکم عربستان گرفتن و ملک فهد را تکفیر کردن اون زمان ظاهر فعل گرفتن گفت این مظاهره و نصر دادن کفار بر مسلمان ها و این کفر اکبر مخرج از ملّه هست دستور میدن 4 سال زندون میشن و بعد از 9 سال فکر کنم 96 اگه اشتباه نکنم آزاد میشن انا کل این بحثا اشتباهاتی که اینها انجام دادن متاسفانه شور و بقولمون مقب... همون که شیخ مفهم میگه العواطف عواصف عذره ما بغض کفار داریم بغض مشککین داریم این دلیل بر این نمیشه مجرد این که ما از اونها کلمات گرفتیم ما کافر بشیم ما بغض اونها رو داریم ولی که ما الان نمیتونیم با اونها بجنگیم قدرت تو و وعد له مصافعهتون عده و اعداد میخواد اعداد معنوی ما سی ما نداریم الان چون ما نداریم یا نمیتونیم دلیل بر این نیست که ما اصل جهاد رو قبول نداریم و قاتل الذين کفروا کتال جنگ امرت ان نقاتل الناس تا ان انبذ في کسی بخواد جهاد را انکار بکنه نقض اصلی از اصول شریعت رو کرده و مرتکب کفر شده جهاد شریعیه جزء اصول دینه بلیکن بحث اینکه ما نمیتونیم این یه مسئله دیگه هست بحث خود که خودمون این قال التاسع من اعتقد ان بعض الناس يسعه الخروج عن شریعه محمد صلی الله و سلم كما وسع الخضر الخروج عن شریعه موسی علیه السلام فهو کسی اعتقاد داشته باشه که میتونه از شریعت رسلات اسلام خارج بشه میتونه یهودی بشه میتونه نسرانی بشه یا میتونه حکمی از احکام اسلام را نگیره حکم کفار را بگیره حکمی شرعی دینی از عدیان اونها را بگیره حکم اونها را بهتر از حکم اسلام بگیره این قضیه کفره اولا استدلال خسرین در بحث رد بر سوفی ها میاره محمد عبدالوهاب چون اونها به قضیه میگ می‌گفتن که خسر تابع شریعت موسی نشه ما نمی‌تونیم تابع شریعت رسول نشیم می‌تونیم نماز نخونیم می‌تونیم بریم کلیسا به جای نماز کلیسا بریم می‌تونیم نماز نخونیم می‌تون روزه نگیم می‌تونیم از شر خارج بشیم محمد اب این بند رو میاره در اینکه این چنین کاری کفره. خروج از دین رسول الله صلی الله علیه و و دین غیر از دین رسول الله برتر دونستن بر دین الله علیه و حتی اگر یه شک باشه کفر استدلالم به قضیه مصاحبه اشتباه چرا چون موسی پیامبر بود خضر هم پیامبر دیگه موسی برای قوم خودش خضر برای قوم خودش دلیل فرمود خداون و لقومه یا قوم لما تؤذونني وقد تعلمون اني رسول الله الیکم برای کی برای بنی اسرائیل پیامبری بود موسی اصلا برای بنی اسرائیل و خضر برای بنی بحث جواب مبارق از استدلال اونایی به تضییع مساوقت استدلال میکنم برای اینکه انسان میتونه اجازه داره از شرع خدا خارج بشه و این مساله من از باب تنبیه بگم خداوند وقتی که در قران میگه احبار هم و رهبانهم اربابا من دون الله رهبانشون علماشون رو ارباب قرار دادن که رسول در جواب عدی میگه میگه ما اونها رو ارباب رب خدا قرار ندادیم میگه میگه اونها حلال خدا رو حرام نمیکردن حلال نمی کرد گفت آری بعد میگه این عبادته اوناست ما باید برحذر باشیم از اینکه سخنی از رسول الله صلی اللہ علیه و سلم به ما برسه مثل من مثال میزنم حدیث رفع الیدین در صحیحه به استهزا و مسخره گرفتن و بد دونستن و بغض و قبیح دونستن و زشد دونستن این داره پشه میزنه نکنم این چیه اینا اووردن به مسخره گرفتن دین به مسخره گرفتن حدیث رسول الله صلی اللہ علیه و سلم شامل این بندها میشه خوسیان کسی که حدیث براش ثابت میشه حدیث براش ثابت میشه خاطر همین اتفاق ائمه ان امام متکی الله ایجوان نق ان من سبت عنده الحديث لم يسع الخروج عنه لقول کائن من كان کسی که حدیث براش ثابت شد حق نداره از اون حدیث خارج بشه قول هر کسی بخاطر مقابلش باشه حق نداره شریعتی ثابت شد به شرع فلانی بگیم فلانی ما که نمیتونیم بفهمیم فلانی بهتر از ما میدونسته میدونم این ثابته تعصب به خضی نصده به شخص چون اون شخص نمیدونم مذهب ما مذهب فلان شخصه من شافعیم امام شافعی اینطوری گفته وقتی که به من ثابت بشه ثابت بشه اقامت خجده بیان محجد بشه یعنی من بدونم برای من سفیم بشه اینجا باید من برحضر باشم ف اینکه من دينم إسلام رزير السؤال ببرم من ناخذوك بإن فعل باإن قوي بابرتد السنفعل الإمام يقول إممي برقولرس اللهم الله عليه يصللم. ان صبت بعد خذرب قال العشر العراض أن دين الله تعالى لا يتعلممهه ولا يعمل به ومن ععوا عن ذكرري فإن له معيشة بكب والذ كفروا عن أذرو مرضون مرضين. اونهایی که اعراض میکنن از نماز خوندن، اونهایی که نما اعراض میکنن از زکات دادن، از روز گرفتن، و اعراض کامل از یاد گرفتن دین، نه بگیرن، نه به اون عمل بکنن، اینها دوچار کفر اکبر شدن به اتفاق. به خاطر همین اتفاق ائمه کسی که کسی که از عمد نماز را ترک بکنه، دوچار کفر اکبر شده. کسی که نماز را از ازعم تذرف بکنه محل اختلاف کجاست از باب کسالت جمهور میگن کفرش اکبر نیست احمد بن محمد رحمهم الله میگه کفرش اکبر اما کسی که ازعم بعضیا میگن البانی در کتاب طارق الصلاح گفته که نه استدلال کرده به عمل خیرون قطعه حدیث بطراق حدیث حذیفه و حدیث بطراق سناد کرده بر این که شخص اگر شهادت این بگه همین کفایتش میکنه که در حدیث حذیفه لا یدرون ما صیام ولا, صيام ولا صيام. نمیدونم نه چیه ولی بای وجود این کلمه به دردشون نمی‌خوره نگاه کنید بین گفته‌های ائمه باید جنب ولی کنار هم دیگه بذاریم البانی رحمها الله در سلسله زیه جلد اول و این جلد دوم اتفاق ائمه نخ میکنه در کفر کسی که از عمد نماز راها میکنه این تاره که عمل به کلی است این نماز فرض دیگه من نماز میکنم این محل اتفاق البانی رحمها الله عمل را از ایمان میدونه برخلاف اون چیزی که شیوخی که ما داشتیم مثل عبدالله سعد در عربستان مثل امی سلمان علبان که میگن البانی مرجعی بوده و سفر حوالی کتاب ظاهرات و الارجا را می نمیسه در تبدیع, در تبدیع البانی که البانی مرجعی بوده چرا چون عمر را از ایمان خیر البانی عمر را از ایمان می نمیسه. اگر البانی رحمه الله عمر را از ایمان نمی, نمی, نمی پس چرا میگه کسی که از عمر نماز را ترک بکنه کافره؟ چرا در تحقیق کتاب تهاوی میگه ایمان قول و عمل و اعتقاد در خلاف قول تهاوی میگه تهاوی اشتباه کرده بله جایش عوض قلم عالمی بلخده اونجایی که بحث کتاب تارک صلاح است بحث تارک صلاح و بکسالته یک شخصی شواد جای نماز بکونه شواد جای نماز نخونه در شأن این شخص قال بانی رحما الله اینجا ترک نماز شرط کماله نه شرط صحت اصل ایمان ازش نمی این شخص گناهکار عاصیه این گفته هم که عمل شرط کماله گفته اشاعره ما قبول داریم و این گفتیم لحظه قلم و این دلیل بر این نمیشه چون در یک جا قلم عالمی میلغزه ابن حجر ناق میکنه ابن نوبوی ناق میکنه ما اون رو به اون اون فرقه و اون نحله بچسبونیم بگیم که نه اینا مشعری بوده مثل اونها اینا مرجعی بوده مثل اونها خیر اصول و قواعد البانی رحمه الله فرق میکنه با ابن حجر و نوبوی البانی رحمه الله دار که عمل از عمرو را کافر میدونه اگر البانی عمل را از ایمان نمیدونه پس چرا تکبیرش میکنه این قضیه را خوب بفهمیم با دقت کلام ائمه بدیم متاثر به فکر این و اون نشیم خصوصا اونهایی که توی قلبشون بر ائمه و علما کدورت و چی بگم نمیدونم یک تعبیر بکنم که کسی ناراحت نشه در دل دلش صاف نیست به قول خودمون با اینها ها خصفاً آلبانی ما بودیم تو عربستان. دلشو صاف نبود خوششو نمیاد از آلبانی حقیقتشو بگم خوششو نمیموند خیلی از مشایخمون خوششو نمیموند از اون مشایخی که حتی برچس به ارجار رو با آلبانی میده میگفتن آیه آلبانی جهمی مرجییه شما این اصطراح جهمی و مرجیی بر آلبانی در یعنی اگر مسترشو میخوای اولین کسانی کم ادن استفاده کردن زین محمد بود. الراسه فكره تاثير الى اعاده الحضور داره امام السيد قطب محمد قطب بعد از انهم ساقدنا محمد قطب سافر حوالي و سلم عوده ومدى وبعد از انه وصلوا معلمون عبد الله السعدي ومدى شو بنقيت صوت منبر منبر توحيد جهاد صوت توعيش بتقونيد القاعده بتقونيد مقال اي بر البانيات الباني جهامي الباني مرجعي الرد على الجاميه الرد على المداخلات الرد على البانيه على باذيه زشتون و تخبیح كردن اين علما تمدن علمي مسائله مطرح كردن بحثي ادا با تنافس القاب لقاب دادن و تخبیح كردن و مرجئ دانستن حتا ابن باز كه سرتصي مياد در همون سايت منبع توحيد جهاد شما برید بخورید باز را به عنوان يک طاغوت شخص کافر ابن عوفين هم ميگه اينها تواقيق بودن چون موالیي تواقيق تن از حقام دفاع كردن ثوری شده جس اگر گفتی حاکم کافر نیست کفرش کفر دونه کفر تو هم میشی چی موالی تبعی تو هم کافری خون تلاله بعد کشته هم بشی تکفیر این از مسائلی که احسان باید برحذر قال والدلیل قول تعالی و من اظلم ممن ذکر ثم اعرض عنها ان من المجرمین منتقمون و من اظلم ممن ذکر بایه ربه ثم اعراض کسی تذکیر بعد اعراض میکنه پشت میده نمیخواد اصلا به اسلام عمل بکنه این شخص مجرمه این شخص کافر ان من المجرمین منتقمون قال ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهاذل والجاد والخاف إلا المكره فرق بين این نواقض شخصی به شوخی مصطره بدین بکنه شخصی جدی و شخصی از ترس مگر مکره مگر اینکه اکراه بشه که تو رو میکشیم نه اینکه استراق کتک هست که اون شخص اگر کلمه کوف بگ معزوره و همچنین جهلك خودش قبل ما بحثش کردیم مشاره کردیم و كلها من عاعضی ما يكون خطرا همه اینها خطرناکت. ال ما بحث اینجا گفتی من اینجا همه زوابط و موان اتاف را نگره و ما اشتباه داریم ننیورد اینجا. اینجااستقراء والاست است شخصی که از شدت خوشحالی اشتبااقه مشت قال ا هم ان تعب دیوان ررب ببر تو بندنده ب... من منطر دگاره. اشتباكات على بس مجرد بقول عذر يكفي عز اشتباهم جزء موانعه نميتني مشف تصدق بكريم مكره الا المكره الا المخطئ الا الجاهل انهم بواذيات الا إنها انهم ممانع وكلها من اعظم ما يكون خطرا انهم ما خطا ماك شكي لأن لين اشرت ليحبطن عمله احباط عمل بيكون كل بهشرب لسان حرام بيكون ومن أكثر ما يكون وقوعا يعني انها ببشترين چیزهایی هست که بواقع مشه فينبغی للمسلم ان يحذرها و يقاف منها على نفسه باید مسلم هر شخص مسلمانی باید برحذار باشه و بترسه نعود بالله من موجوبات غضبه فناه ببنی بخدا از اون چیزهایی که غضب و خشب خدا را برمو واجب میکنه وعذاب دردنا کشب علیه وعقابه وصلا الله علی خیر فلقه محمد و وآله وصحبه وسلم